د غور ولایت د چرسدی پولیسو علي کیچ پرون سهار شپړ بجره دی ولایت مرکز او هم د ولس مجاهدینو په ګړه د خیبر عملیاتو په لاله کې تر واستوال برېټاندي ونیوه او د مامشن تر دو بجو پرې په بش پړتو غفتا کړ د دشمن لستنا اسکر و جلسی او کنش منور ربت سی همدار از مجاهدینو د دشمن د شپړ رینجر او موټر کوشمولي یو تا یو هاوان شپړ د اسمله کلاشن کو سقلان Pà s'ilha o s'nduqa m'xtalli نو nou m'rmui, gransmer سایکل او نور nore-muhemat p'ghani په Pà d'hira-mode no m'olè-wilat dà سره hangi 4-0 l'anmaïnda sara tf'siliei khabari kardie. M'atharèm M'olè s'ab, dà 4 3 2 1 2 معلومات 2 سره 2 چې 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 تطبيق شمال معلومات اليوم رضي دائره جنوبه برك 1040000 سنجري مجاهدين در الوسطي 400 تقريبا بموقعي اكثر 400 كيلومتر ولايات موقعه اسمين از همین این مرگاب و غیرونین که مربوطی مرکز رایت هست تقریبا شمار 400 یا 4500 نفر مجوهدین بودن و اینها از که طرف اوزوالی قضای اوزوالی حمده کردن ساعت 6 صبح جنگ باردای اوزوالی شده و تا ساعت جنگ دارد در ساعت همین مدردی سدید در از ساکین اوزوالی خوشته و حضوری چند تنیدگه ا حدود نفر تاوری که به ما گفتن از درساکین از این زخمی شده و بعدا از ازاکین با چند تن عربکی که در داخل قریه اولوسوالی از بودن مجبور شده از اولوسوالی فرار کردن به طرف قریه نلمنگ که از قریه های مربوطی هنی اولوسوالی به زندگی بادرست قرار داره رفتن و هم مجایدین کم من اولوسوالی کردن تقریبا دو ساعت مجایدین در داخل اولوسوالی بودن و غنیمتی که گرفته بودن جمعواری کردن که غنیمت هایی به دستانبه عبارت بوده از شهد مینجر موتر و چار مل پیکا، یک هاوان، یک داشکه، یک مل راکید، شهد خیر راکید و بیست و شش و دیگر محرمات بیشتاری کتر رسولی زخیره بوده که از جمعه تقریباً صدها صده مردی کلاشینکوف و پیکا و دیگر اخنیه سقله و خفصه بوده اما را با گرفته و طبقی سلانی که سابق خودی از داشته بودن و تقنیمی که گرفته بودن ساعت 3 بگه یا تا ساعت 4 بگه مکمل از مرکزی ولسوالی خود مجایدین بیرون شدن و در بین ولسوالی و در بین ولایت یک بند به نامی بند خفک در همینجه مجایدین آمدن و کاملا و کمین آه. گرفتن چون خبر بودن که از مرکزی ولایت غور تقریبا حدود ست موتر و تانگ یا بیشتر که مرکب از روز و کمندو و نظم آمه و امیت ملی و پلیس بودن در حال حرکت به طرف یمین و رسوالی بودن. اینا رای دشمن کمین گرفتن و از تی روز ساعتی کش بجه تا این شب ساعتی ده بجه ده تقریبا جنگ اضامه داشته. این شب شب گذاشته جنگ سقیله و خفیصه از دو طرف بوده. تلفات دشمن به ما دقیق معلوم فاتری که شب بوده کوته و زخمی خود به شب بردن تییاراتی دشمن هم زیاد یا گزارز رفت آمد داشته و گفته می شو که از قراری گفته این تخمینی و کسایی که در داخل ما داریم که دقیق معلومات تانوز بده فرنا پان و گفته میشه که تلفات زیادیره دشمن دیره اینامرو ساعت یا تقریبا یک متری دشمن ش مین نه شده که هشتن کوچ جه گذاشته به متر کاملا تخریب شده و همه قوائی مشترک دشمن از پنج ارگان از روزی گذشته تا دی شب تا این روز و تا شب دوژه ای شب یک قوام الحمدالله به طرف پیش رفتن نتانستن و جا به جا محاصره هستن و تیارات دشمن بسیار گشت گذارم داره لیکن الحمدالله تا آنوز بموازمان نکرده و مجاهدین در سه همه جنگ اما خود مرکز ولسوالی که بودن استین افشار شهید دانکیا کی در حال اول بار زخمی شدان شهید شده دو نفر زخمی شدند و بعدان شهید شدند دیگر الحمدلله مجاهدین تا هنوز و د غور امنیه کماندان فهیم قائم و سینن سهار درسا ملی اردو ځکه د غور لوې مرکز د خوله جلسول ولسوالیت او د سیمه ای سیمه خالک مو سلام کار سول چون سوالی بیفتاد طالبانو په نو نه فره وجلو او درې پولیسو په وجل کې دوه بیستونهاله او سوالی بیفتاد حکومت په کنټرول کې ده خبره ترسون اندازی پر حرکته حقیقت دې خبر مولوی محترم یې اتی صحیح قائم امو ما مجاهدین درو نه حساب نه کوم او الحمدلله وروزي چې یو ووت نن ورځ اثاراتو تلقاتو خودی ازو هم باید کناهت کنه که مجایدین از اطمت کرده سلوت بیشتر بارند و به هر حال گفتهی که اونا گفتن از یه قرار بوده که نتیج در به شما عرض کرد مجایدین تبک پلانی که خودیان اونها داشتن بخاطر این که گفتن اگر ما در ولسوالی بمانیم دشمن دوریخته های اصاکر و اردکی از او طرف بارگیز گرفتن دوم بار شاید بیاید و از این طرف شاید قوای دشمن برسه ت یکتر ای از که ما بند خفک برویم که بینی ولایت و در بین ونسوالیست وقتی که رای اون دوره بگیریم تعداد مجاهدی پسی پوشت ماندن امنیتی به خاطر ای که اگر طرف ملسوالی کسی پیدا شده بازدفاع کنند این بزیادتر قوت خود مجاهدی در بند خفک متمرکز ساختن همون سی نفری در کنان میگن شرط بیشتر هم باشه که از روزی می‌داشتند ساعت 6:00 بجے ناموند خفا رسیدن و تایم تا شد 10 بجے الحمدللہ شیدیر مجاهدین استاد هستند و بااختیار هستند یک قدمم پیش رفتند هستن. و هستند به این فکر بودن که ما اول اسوالیه ترک کنیم بعد از اینکه قوا دوشمن شکست بخوره و طرف ولات بگرده این اساکه بیجدی که در داخلی اولسوالی با چند تر اربکی ها جای بگیرند امکانات محبوبات محمد هم ندارند متفریکل و متر هم ندارند چون پیاله درخته بودند اینا خود خود ان به تعارف ما تا ماوراء طای رووالی که این روز نمای امرای مسخنگ گفت گفت وقتی که ما ولسوالی رو گرفتیم چند مینگری کمی خراب بود که تخریب شده بود اونا رو با آتش هم نکشیدیم و آوردن نمیشد نه آوردیم خب به خاطر آتش نکشیدیم گفتیم الحمدلله خدا از ما وقتی که برای خدمت بخوونه برمیگردیم دوباره ولسوالی با ما مقاومت و جنگ کرده نمیتونه چه اسلحه دارن نمکالات دارن نه دیگه پشتیبان و قوتی دارن از همه خاطر مجاهدین خودی از اونا دیرو ساعتی 3 تا 4 به اختیار خود مرکز ملسوالی تخلیه کردن و همه چیزی که زخیره بوده با خود بردن. بعدا قوت خود به بند خفق برای قوات دشمن متمرکز ساختن و این رو سبنی بلکه دیرو ساعت شش بجه قوات دشمن با ما بند خفق رسیده تا این شد جنگ دامه داشته و الحمدلله ان مشت تلفات زنانه و شكات زنود بیشتر بوده و مجاهدین تا آن روز الحمدلله هیچ نوع خساره مالی و جانی ندیدند و بسیار با روش های قبی و ملت قرار دی کلامی بیان ای دروغ محض است به خاطری که همرو در سر تا سر خور ملت از مجاهدین پشتیبانی داره خصوص در همین منطقه دلالت والی چارتاد و مربوطی مرغوب و مربوط, و غلمی مربوط مرکز استن در دو دوری انتخابات این کاملا مردم با مجاهدین دو و دوش استاده بودن شما می در یک ولسولی 500 یا 600 مجاهدین مسلم بسیار مشکل تطایده باشده به این مجاهدین به این خاطر 500 و 600 مسلم میشه که مردم اصله دارن روزی که جنگ شده کاملا ملت متدین و همون مجاهدترور به همراه مجاهدین استاد هستند با زمین سهنه هم مردم میبودن غیر از یک قریه خورد اربکی ها که به اطراف ملوسوالی بود چندن با هموه ساکر یجیر گریخته بودن و شب ساعت تیزدن و پس به موقعیت ملوسوالی آمدن دیگه کسی سیاذ ملت ما از اونها پشتیبانی داره و نه از اونا دفاع میکنه ملت کاملا صف مجایدین گرفته داره با قوای دشمن که تقریبا مرکب قط تانگو و مترس و چه قدر پیاره ارزش داره الحمدلله طی از 24 ساعت هم بیشتر شو که جنگ ادامه داره با حدود 30 ساعت میرسه که جنگ ادامه داره به همین حدود نه یک گام به طرف پیش رفتن نکونستان ای کاملا پشتیبانی ملت از راه میکنه محترم مولوی صاحب در اولسوالید سون مهم مد مجاهدین او درقه ولسوالی دفمان لپارتون مهمه ده اهمیتی از این ولسوالی بسیار اهمیت خاص است کنان که کشتر به شما گفتم در موقعیت 154 کلومتری ولایت در طرف شمال ولیت قراره و ای این ولسوالی تقریبا با چار ولیت مرز داره مرز غوره با ولیت فاریاب سریپول بادغیس بر قرار میکنه وای موقعیت بسیار استراتژیک خوب داره، دره های بسیار خوب داره و جاهای بسیار خوب داره. و یکی از جمله کمیهای ذی است که فقط راه‌های عبوری که تنها یک راه است، زمانی که مجاهدین هم روی عبور رو بسته کنند، وای دشمن اصلا رفتن نمی‌تونه، مثل که حالا در محاصره و در بند قرار دارن. دولت کوشش میکنه که اگر همین موقعیت به دست بیاره، مستحکم بسازه. مجاهدین در اطراف ولایت کم میشوند و راه ارتباط مجاهدین وزور و بادغیس و برای پول و فاریاب باید چیزی کاسه میشه اما زمانی که ای ولوسوالی و موقعیت به دست مجاهدین باشه ای به حیث اگه مرکز بسیار خوب و بسیار مستحکمی از برای مجاهدینی چار ولایت میتانه بشه و و الحمدلله مجاهدین جمعهی مشترکی رو که تای چند سال میشه تشکیل دارن از امی چار ولایت وشش امیره دارن که از جمله همین اولسوالی ده به خود یک مرکز قرار می دنن به خاطری که دره خوب داره تیاره دشمن اومده نمیتونه چون گوموتری دشمن از هر جه اومده نمیتونه فقرهای خاص داره که مجاهدین اینا رو می گذاری میکنن دیگه دره ها کاملا به تصرف مجاهدین است و جهاب به تصرف مجاهدین است از خاطر این موقعیت بسیار به من اهمیت داره یا به دشمن هم اهمیت داره و الحمدلله در سراسر اولسوالی غیر از مرکز خود اولسوالی که قرار دی معلوماتی که ما داریم و گفته خودی مردم شاید هم صد خانواده بیشتر در مرکز نباشه. فقط از زعمون مرکز ولسوالی ن باشه فقط همین حدود صد خانواده مرکز ولسوالی به همراه دشمن است در غیر رو تماما ساحه ی ازی ولسوالی به کنترل مجاهدین است الحمدلله و قوای دشمن از دست این مردم ملت حتی به منطقه افتلا میتواند و این موقعیت الحمدلله به دست ما است لیکن بصورت فر اهمیتی و اهمیتا آه، بلک ز ویرات په اوا معلومات را که سید خیبر در عملیات را اعلان و رستا ویلایت که سنگ وزده و در مجایدین و غور ویلایت که الحمدلله شوش کمیابی لاری و که سو نمنیت مرد اولان دکیست الحمدلله از زمانی که عملیات مبارک و خجسته خیبر روغاز شده در ولایت غور بسیار به توری فوق العاده و به توری چشمگیری فتوحات نسیب مجاید شده از جمعه فتح سنگان قریه سنگان یک قریه است در مرکز ولسوالی شینکود که یک ولسوالی است به فاصله یک و پینجا یا بلکه دو و از ولایت همین ولسوالی یک قریه به نام سنگان بوده مردم همین قریه سنگان تقریبا حدود 25 یا 30 سال می شود که اونا کاملا مسلح بودن و از زمان صادق با خود اخطیقه داشتن و از زمان اول یعنی حکومت اجیر اونا حکمت اصفاد شدن و پلیس بودن و با دربکی شدن کاملا مرکزی بسیار فوق العاده ونده اونده داشمن در همه منسوالی همه قدیه سنگان بوده بلکه می توانیم گفته که مرکزی بسیار پر اهمیت دشمن و مهمی دشمن با بخاطر دفاع از شینکود ولسوالی که یک ولسوالی است و ولسوالی که بره و ولسوالی دونینه به همین سه ولسوالی همین مرکز بسیار عمده بوده بسیار لوا از خود داشته بسیار محمد داشته و حدود پنسد خانه تقریبا در داخلی همین قریه بودن از همین پنسد خانه دو و نیمسد خانه از اینا کاملا پشتیبان دولت بودن و از خود اکلیه داشتن و در از اینجا تانگ حتی داره بودن تانگی که در ملسوالی داده بودن اما تانگی به همین قریه روان کرده بودن سنگر مستکم و دفاعی دشمن در سر سر همین ملسوالی همین قریه به شما رو میدفت به تاریخ 19 شبان المعظم 1435 مجایدین امانتی اسلامی از ولسوالی شمکود ولسوالی تیوره با یک دیگر همده شدن و چیزی از مجاهدینی ولسوالی باغران ولایت هیلمند چون که اونا هم حجای وزیفه در همون منطقه میکنن که ولی ما از ولایت است همین مجاهدین از دجا با یک حجای همده شدن حدود چار و یا پنیصد نفر از ساعت شش بجه جنگ از چار طرف قریه سنگان شروع کردن تا ساعت هشت شام، به هشت شام تقریبا حدود هفتونیم یا هشت شام بود که کاملا منطقه فتح شد یازده پوسته دشمن در داخلی سنگان و یک پسته قوی دشمن به قریه تلخط بود اینا کاملا فتح شد به طور مجموش شش متر رینجر، یک ارارت تانک، چل متر سیکل، چل صندوق مرمی پیکا، یک هاوان، یک داشکه، از دشمن به دست آمد و صدها سمدوخ مرمی کلاشنکوف و, و دیگه عشقه به دست آمده و طلبات جانی دشمن شش اسکر یه گیر کشته شد و پانزه تنی از اونا زخمی شد بعد از ایکی منطقه کاملا به تصرف مجاهدین امارت اسلامی درآمد قومندان اربکی ها به نام قومندان تخردین به همرای چند تنه دیگه که یک اونا به نام مولا جمه گل بود کسیل ولسوال بود. اینا گرخته از امیر راه های سعبال اوهوری کوها پیاده همون شب رفتن و خود به ولسوالی رساندن و از ولسوالی مستقیمن در ولایت رفتن به خاطر کمک خواستن. و اهمیتی از این منطقه به شما این کار دولت هم نشان میده و مجردی که... اینا در ولایت رفتند دولت کماندان فخردین گرفته به همرای کماندان امیه ملسولی هر دور بندی کدند که تا آنوز هم بندی هستند و گفته میشدند که برای کماندان فخردین شش سال قید آوردند که شما چرا این موقعیت از دست دین و ایتانگه با مترا به دست مجاهدین تپردین اهمیت یعنی منتقه دیشار بود که الحمده به دست مجاهدین آمد و دوم به قید ملسولی تیوره در ولسوالی تیوره یک پوسته بسیار کنان بنامی پوسته سری آنه به 22 مای شوان المعظم 1435 مجاهدین ولسوالی تیوره با وجود که میادنه با ولسوالی شینکود در همه قریه سنگان و قریه تلخک با جا بجا بودن و به فاصله دو کلومتری فاصله از ولسوالی کمربند انداخته بودن دیگه مجاهدین جمع شده سری پوسته آنه حمله کردن پوسته آنه یک پوسته بود که تقریبا حدود چار سال شده نیمی از منطقه همین ولسوالیر از کنترول مجایدین خواهید داشت و مجایدین در اون جا خواهد رسانده نمی با وجودی که مردم یز اونا با مجایدین ارتباط داشتن و بارها می گفتند که همین پوستر ما با شما همکاری میکنیم مجاهدین به attackی خاصی سری پوسته حمله کردن پوسته منگذاری کردن در شب 10 نفر از اساکب اجیر دشمن که در پوسته بودن کشته شدند و 6 نفری دیگه زخمی شدن پوسته کاملا به دست مجاهدین آمد قلعه‌ای که بود گرفتن و همین منطقه الحمدلله که قریبی نمیولسوالیس بعد از گرفتن پوسته کاملا به تصرف مجاهدین آمده و همه ملت مسلمانی خود از مجاهدین اعلام کردند و همراه مجاهدین همراه هستند و در تاریخ 6 طالقون مبارک بیا 1404 با تاریخ 4 رمضان المبارک 1435 به نام قماندان عبدالهادی در مولوسولی شینگوت بعد از صحه سنگان و همراه 150 نفر مسلح که چندین میل صلاحی سقیله و خسفه را با خود داشتن از جمله تقریبا حدود 15 میل یا 20 میل فیکر و از سی قریبی چل مل راکت و دیگه اخری زیادی که تیسان های گذاشته داشتن آمده بامجازی نمارد اکرامی تایرسته شده قومندان عبدالحادی بنام قوم آقا و ای کماندان تئی همه 14 سال و تقریبا حدود 20 سال میشه میشد، صدای اون کماندان بسیار کلان بود، اسلحه ایجاد داشتن و اینا کهمی حکومت آمد و حکومت استاد هم نشدن اما مخالفت جنگ هم با حکومت نکردن، مبارها میگفتن که ما در عین سنگان به مولا سلیم محاصره هستیم و ازو طرف ولایت ممال نزدیک است، اگر سنگان فتح شد ما به همراه مجاهدین آکسارا همکاری میکنیم، بعد از فتح همه فرماندهان مذکور به همراه 150 نفر آمده با مجاهدین پیوست شده و اعلان پشتیبانی از مجاهدین کرده و چندین تن دو گروه تقریبا به نفری اکنون در کمر بند وجود دارند که به همراه مجاهدین در اطراف اولسولی کمر بند دارند دیگه مجاهدین خود با خود برده و در قریه خود پیره و پیراو و امنیت خود را برقرار دارند چون نزدیک منیر ولایت است و تسلیم این فرماندهان و پیوستگی از فرماندهان با مجاهدین میته را نه کی عبور و مرور ولسوالي با ولایت استره منسکل مواجهه کلا یک سرک خاص و راه خاصی که استنډول تقریبا بیرون ده از منطقه همین کماندان مذکور رفت آمد داشتن همون سرک الحمدلله به تصرف مجاهدین اومده الحمدلله اموری صاحب ستاسو معلومات او یو جان منن خلیل زادهクセسان هم د ولسوالي هون ده باندې خفق پسمو کی د دشمن له قوه سره سخته جګړه Cè pa païlaki dè dushman yau tàngk pà bish pàratu gà vijàr sò wò pàk s'pàrà a tà tà nà azzir a skàr zè pàr zè wò jàl sòl. Là dè sàrà tà dushman a